صفحه اودیو 49 مدتی گذشت و عید قربان فرا رسید. لازم بود که گاو یا گوساله را قربانی کنیم رعیت من هم از دهستان گاوی را برای قربانی کردن در این روز به خانه من آورد بعداً معلوم شد که این گاو همان کنیز بیگناه مادر پسر شده من بوده است من دست و پای گاو زمان بسته را بستم تا آن را قربانی کنم ولی دیدم که چشپای گاو پر از عشق است و گریه می و با نگاه انتماسا خود به من می که به او رحم کنم و او را نکشم این منظری رقت من مرا منقلب کرد و احساس طرحم و دلسوزی به گاو بیچاره کردم و به گفتم برو گاو دیگری بیاورد همسرم نازل این صحنه بود و از ترحوم من غضبناک شد زیرا میدید که با دلسوزی خود به حال این گاو نقشه او را نقشه بر آب میکنم. و فریاد کشید این چه کاری است که می کنی؟ چرا گاو را قربانی نمی کنی؟ رعیت تو گاوی بهتر از این گاو ندارد به علاوه گاوهای دیگر به این فربهی نیستند من هم برای رعایت حال همسرم دوباره به سراغ گاو رفتم و کوشیدم تا دلسوزی و رحم خود را کنار بگذارم سعی کردم گاو را قربانی کنم این بار این حیوان بی گناه و زاری را آغاز کرد و با چشمان خود التماس بیشتری که تا به او رحم کنم و خونش را نلیزم این بار هم تشمان زیبا و پرتمنای گاو مرا تحت تاثیر قرار داد و به هم گفتم تو این گاو را ببر و خودت آن را قربانی کن این کار از من ساخته نیست وقتی این گاو به من نگاه می کند تا اعماق از احساس و ناراحتی برایش میسوزد. رعیت گاو را برد و فوراً آن را قربانی کرد اما در همان لحظه متوجه شد که این گاو فقط مرشی استخان است و ذریع گوشت ندارد من هم به رعیت گفتم تو خودت این را بردار و یا به فقرا ببخش و به جای این گاو اگر گسالی پرواری داری اینجا بیاورد تا آن را قربانی کنم من نفهمیدم که بلاخره این رعیت دهاتی با استخانهای آن چه چکرد ولی رفت و چاق به جای آن آمد تا من آن را قربانی کنم اگر شما من در آن هنگام نمیدانستم این گوساله همان پسر عزیزم است که همسرم برای سر جادو او را به این شکل در آورده است اما همین که با او روبرو شدم و به چشمانش نگاه کردم محبت و علاقه خاصی در دل نسبت به او حس کردم و نگاه بیگناه آن حیوان مرا تکان داد او هم به سهم خود همین که مرا دید با تمام نیرویش می‌خواست تن را پاره کند و به سوی من بیاید بالاخره با تقلای زیاد را پاره کرد به طرف من دوید و جلوی پاهای من سرش را به زمین گذاشت و گاهی هم به پاهای من میمالید و ترحم مرا به سوی خود جلب کرده بود مث... مثل آنکه با این حرکات میخواست به من بفهماند آنقدر سنگدلی به خرج ندهم و جان او را نگیرم و میکوشید به نحوی به من حالی کند که او گوساله نیست فرزند جگر گوشه من است که به این روز افتاده است حالتی که گوساله در من به وجود آورد، به مراتب بخشتر از اشکهایی بود که گاو بیچاره میریخت. من شدیداً تحت تاثیر عواطف انسانی و یا ناآگاهانه پدرانه قرار گرفته بودم، به طوری که طاقت خود را از دست دادم و از کشتن او منصرف شدم. گویی طبیعت و یا پروردگار این تصمیم عاطفه را در ذهن من زنده کرد. در این لحظه رو به رعیت کردم و گفتم این حیوان را به محل خود برگردان. و خوب از آن پذیرایی کن و مراقب آن باش تا آنکه سال دیگر برای قربانی بیاوری همسرم که در آنجا حاضر بود به دیدن این صحنه فریاد براورد شوهرم این چه کاری است که تو میکنی کنی مرا گوش کن و همین گوساله را که بسیارم فربه است قربانی کن. من گفتم زن من خیال کشتن این حیوان را ندارم آن را نگه میدارم و از تو هم میخواهم که با نظر من مخالفت نکنی. زن بدنهاد و خبیز که حسادت شدید به پسرم می‌ورزید، رضایت به نکشتن گوساله نداد و مرا مجبور کرد تا چاقوی بردانم و او را قربانی کنم. شاهزاد که سخنش به اینجا رسید، لب از گفتار فرو بست و گفت: سپیده صبح در حال دمیدن است. دینارزاد گفت: خواحجان، این داستان خیلی شیرین است. بقیه آن را به وقت دیگر ما کول می‌کنی؟ شاهزاد پاسخ داد: چنانچه سلطان اجازه دهد که زنده باشم. بقیه این داستان را که بی شنیدنی است است فردا خواهم گفت شهریار که برای شنیدن عاقبت کار پیرمرد و سگ ماده او و سرنوشت پسر مورد علاقه پیر مرد بیتاب بود به شهرسات گفت باید بقیه قصه را فردو شب پایان برسانی شب پنجم هنگام سحر و یک ساعت به سفید دم دینارزاد صدا زد جان، اگر شهریار اجازه فرماید بقیه داستان را که سراپا برای شنیدن آن گوش هستم برایم تعریف کن که لذت خود را به کمال رسانم شهریار که خود دست کمی از دینار زاد در شنیدن داستان نداشت گفت با کمال میل آماده شنیدن هستیم شاهزاد گفت ای شهریار جوانبخت پیرمرد اولی که سگ مادی به همراه داشت دنباله داستان را برای بازرگان و دو پیرمرد دیگر و جن چنین ادامه داد من چاقو را برداشتم و به سوی گستاله رفتم تا آن را قربانی کنم یعنی در واقع با چاقو گلوی فرزند دلبندم را ببرم. وقتی گوساله چشمهایش را به سوی من برگردند لبریز از عشق بود چشمهایش از غم یا عشق حالت پجموردگی و افسردگی داشت در این لحظه قلبم فرو ریخت و یارای بریدن حلقومش را نداشتم چاقو از دستم به زمین افتاد و با اراده قوی به همسرم گفتم گوساله دیگری را به جای این قربانی خواهم کرد و این را نمی‌کشم. همسرم تلاش خود را به کار برد تا مرا از این فریب منصرف کند ولی من محکم ایستادم و او را مطمئن ساختم که این گوساله را در عید قربان سال بعد قربانی می‌کنم. روز بعد مرد رعیت پیش من آمد و گفت می‌خواهم مطلبی را به اطلاع شما برسانم و انتظار دارم که با شنیدن این مطلب از من خشنود شوید. من دختری دارم که در این سحر و جادو بیمانند است دیروز وقتی گوساله را به دستور شما به جای خود برمیگرداندم دخترم را دیدم که وقتی گوساله را هنگام برگرداندن به تبیل دید خنده‌ای کرد و خوشحال شد اما پس از لحظه‌ای به گریه افتاد و قیافه غمگینی به خود گرفت من از دیدن این صحنه عجیب و غیرعادی خنده و گریه با هم حیرت کردم و نزد دخترم رفتم و علت را از او جویا شدم دخترم گفت پدر ای را که قرار بود قربانی کنند پسر ارباب است من وقتی دیدم او را نکشته اند و زنده مانده خوشحال شدم از خوشحالی خنده کردم اما وقتی به یاد مادر او افتادم که همون گاوی بود که با سه و جادو به شکل گاو درآمده بود و تو قربانی کردی متأسف شدم و از شدت تأثر به گریه افتادم همسر ارباب این پسر و مادر را به صورت گوساله و گاو در آورده بود این حکایتی است که دخترم برایم نقل و من هم خواستم به اطلاع شما برسانم سخنان پیر مرگ به اینجا رسید رو به جن کرد و گفت ای جن من وقتی این حکایت رو شنیدم از شدت حیرت دهانم بازمان و بیدرنگ به آخوری رفتم که پسرم را در آن جای داده بودند پسرم را در آغوش گرفتم و چشمانش را بوسیدم ولی پسرم نمی صحبت کند اما حالتی به من نشان میداد که مرا مطمئن ساخت که پسر من است در این هنگام دختر رعیت وارد شد و من به او گفتم ای خانم بزرگوار دانا آیا می توانی پسر من را به شکل اصلی خودش برگردانی و از این حالت گوساله بودن بیرون آوری؟ دختر جواب داد بلی اما انجام این خدمت دو شرط دارد اگر قول بدهی هر دو شرط را قبول می کنی من هم این خدمت را در حق تا انجام می دهم پرسیدم آن دو شرط کدامند؟ جواب داد شرط اول اینکه برای من مهم است که وقتی پسرت به شکل اول در آمد من بلافاصله فاصله به همسری او در و شرط دوم آن است که همسر تو که موجود بدخوا و حسودی است باید به سزای بری هایی که کرده است برسد گفتم با هر دو شرط موافقم و حتی حاضرم قسمت امده ای از املاک و دارایی خود را به تو گذار کنم و تازه این غیر از سهمی است که به پسر خود خواهم داد زیرا نیکی تو بسیار ارزنده است اما درباره همسرم هم حرفی ندارم او سزاوار کیفر است فقط او را از زندگی محروم نکن دختر رایا جواب داد بسیار خوب بنا فاصله زرف آبی را در دست گرفت و وردی بر آن خواند و کلماتی را بر زبان جاری کرد که من چیزی از آن نفهمیدم اما خطاب به گوساله می گفت ای گوساله اگر تو ایمان داری که پروردگار توانا از ابتدا تو را به صورت گوساله آفریده به همین شکل گوساله باقی باش و اگر اعتقاد داری که آفریدگار جهان تو را به شکل انسان آفریده و بر اثر و جادو به این صورت در آمده ای فاصله به شکل اصلی خود در همین که دختر این سخنان را گفت آب داخل زرف را هم به گوساله پاشی و در همان لحظه گوساله به شکل اول خود در آمد من فریاد زدم پسرم پسر خوبم خوشحال شدم و او را در آغوش گرفتم و به او گفتم من در اثر بیخبری از وضع تو نمی به چه کار وحشتناکی دارم دست می زنم و از جهالت پیشه بر ریشهی خود می زنم. خدا را هزاران بار شک که این دختر خانم فداخر و نیکوکار چنین خدمت بزرگی به ما کرد و تو را به من بازگردان خاست خداوند بود که این دختر ترس و سهر تو را بشکند و تو به صورت اولیه درایی. حالا به شکرانی این خدمت گرانبها ها باید او را به همسری خود انتخاب کنی من هم به او وعده کردم که تو شوهر او شوی پسر من هم با خوشحالی فراوان آن را پذیرفت ولی قبل از مراسم دختر رعیت همسرم را به صورت یک سگ مادهی در آورد که شما او را در حضور خود می‌بینید و این سگ همان همسر بدجنس و حسود من است من آرزو دارم که زنم به همین شک باقی بماند از آن زمان تا کنون پسرم همسر خود را از دست داده و تنها شده است و بعد از فوت همسرش سر به بیابانها گذاشته و ناپدید شده من هم به امید پیدا کردن او در بیابانها می گردم ولی این سگ را همه جا همراه خود می‌برم، زیرا به هیچ وجه به او اعتماد ندارم این بود سرزمشت من و سرگذشتی که تا کنون داشتم آیا جالب و شنیدنی نبود؟ جن که شیفته یه پیرمرد شده بود گفت چرا؟ واقعاً حقایت عجیبی بود و به خاطر این ماجرای شنیدنی معادل یک سلس از منجازات بازرگان را تخفیف می دهم شهزاد ادامه داد و گفت زمانی که پیرمرد اولین اولی سرگذشت خود را به پایان رسانید دومین پیرمرد که دو سگ سیاه به همراه داشت خود را به جن معرفی کرد و گفت من هم میخواهم آنچه که بر سر من و بر سر این دو سگ سیاه گذشته از برای شهر دهم، تا خود را قضاوت کنی این سرگذشت شنیدنی تر است یا سرگذشتی که برایش شرط داده شد انشالله که مورد پسند شما باشد و یک سوس دیگر از مجازات بازرگان را هم ببخشی شاهزاده در این موقع لب از گفتار فرو بست زیرا صبح نزدیک می میشد دینارزاد که محض شنیدن این داستان جذاب بود گفت خواهر جان بر خدا میبرم واقعا داستان های تو بی نزیر است شاهزاده پاسخ داد آنچرا که فردا شب میخواهم بگویم قابل مقایسه با آنهایی که تاکنون گفته نیست نیست. اگر سلطان اجازه فرماید و به من فرصت دهد برای تنقل خواهم کرد شهریار سکوت کرد و از جای برخواستا به نماز نشست و بعد هم کار روزانی خود را با اعیان و بزرگان کشور آغاز کرد و دستوری برای کشتن شهستات به وزیر اعظم ساده نکرد شب ششم ساعت ششم فرارسید. شهریار و شهزاد هنگام استراحت به خوابگاه رفتند. دینارزاد هم به خواب رفت و مانند شبهایی گذشته سهرگاه بیدار شد و صدا زد: خواهر جان، اگر خواب نیستی خواهش می‌کنم تا قبل از دمیدن سپیده صبح که به آن ساعتی بیش باقی نمانده، بقیه داستان پیرمرد و دو سگ سیاه را برایمان تعریف کن. سلطان هم که کمتر از دینارزاد علاقه من به شنیدن بقیه داستان نبود، اجازه داد و شهستان لب به گفتار گشود و چنین ادامه داد. سرگذشت دومین پیرمرد و دو سگ سیاه ماده. پیرمرد رو به سوی جن که شاه جنیان بود کرد و گفت شما باید بدانید که ما سه برادر بودیم. من و این دو سگ سیاه. وقتی پدرمان فوت کرد برای هر کدام از ما یک هزار سکه طلا باقی گذاشت و ما هم بعد از مردن او همان کس با کار او را دنبال کردیم. و به تجارت مشغول شدیم و دوکانی باز کردیم و برادر بزرگترم که یکی از این دو است تصمیم گرفت به خارج از دیارمان برود و در آنجا به بازرگانی مشغول شود. روی این است ملک خود را فروخت و پول آن را اجناس و کالاهایی خرید که میخواست با آن تجارت کند. او مدت یک سال در سفر خارج از دیار بود و همه پول خود را از دست داد و وقتی برگشت هیچ پولی با خود نداشت. روزی مردی که قیافه ظاهری فقرا را داشت نزد من آمد. من که تصور کردم برای گدایی آمده است به او گفتم برو خدا به تو کمک کند. فقیر در جواب من گفت من گدا نیستم. به نظر میرسد تو مرا نشناختی. من برادر تو هستم و از سفر برگشتم. وقتی او چنین سخن گفت مرا کنج کافتر کرد و چون دقیق شدم دیدم راست میگوید برادرم است که جولیده و جنده پوش شده. و به صورت فقیری درآمده است او برایم شهرتا که پولهای خود را از دست داده و ناچار به بازگشت وطن شده. او را به خانه خود بردم ازش پذیرایی کردم برایم تعریف کرد که همه چیزش را از دست داده و با بدبختی روبرو شده است. پس از آنکه حساب دارایی خود را کردم دیدم دو هزار سکه طلا برایم باقی مانده است. یک هزار سکه را به او دادم به فرمایه کند و دوباره به کار بازرگانی و ما دو برادر مثل گذشته زندگی را در کنار هم در کمان یگانگی و برادری ادامه دادیم مدتی گذشت برادر دیگرم که یکی از این دو سگ سیاه هست به سراغم آمد و به من گفت که می‌خواهد ملک خود را بفروشد من را برادر و برادر دیگرم تمام تلاشان را به کار بردیم تا آن برادر را از فروش ملک منصرف کنیم اما نتوانستیم و او بالاخره ملک خود را فروخت و پول آن را سفر خرید کالاها و اجناسی کرد که میخواست با آن تجارت کنند. برادرم مال و تجاره خود را برداشت و همراه کاروانی راه سفر در پیش گرفت. در پایان سال این برادر هم از سفر تجاری خود مراجعت کرد و درست در وضع همون برادر دومی یعنی در کار تجارت زیان کرده و دروندار خود را از دست داده بود. من که یک هزار سکه طلای دیگر هم استفاده از تجاره و کسب خود کرده بودم به این برادر دادم تا سرمایه خود کند او هم دکی تهیه کرد و به کسب و کار مشغول شد پس از مدتی یکی از برادرانم نزد من آمد و پیشنهاد کرد که برای تجارت به اتفاق یکدیگر همراه کاروانی به مسافرتی برویم تقاضایش را رد کردم و گفتم سفر هیچ ای ندارد تو که قبلا به قصد تجارت به سفر رفتی پس از یک سال آن چرا هم که با خود برده بودی از دست دادی با توهی دستی و بدون دیناری پور به دیار خود برگشتی اما بردران من دست از اصرار خود بردارید. آنها دست از اصرار خود بر نداشتن و دلایل گناگون می که این سفر برای تجارت و استفاده آینده سودمند است و مدت پنج سال متوالی در گوش من زمزمه می‌کردند. تا سرانجام با وجودی که به گفته های آن دو اعتقادی نداشتم، خام شدم و درخواست آنها را پذیرفتم و آماده شدم که همراه دو برادر به مسافرت برویم. هنگامی که خواستیم لوازم و کالاهایی را که فکر میکردیم برای داد و ستت در شهرهای مورد نظر منصودمند هستند خریداری کنیم. متوجه شدم که دو برادرم حتی یک پول سیاه هم در کسی خود ندارند و به تمام معنی تویی دست هستند و تمام یک هزار سکه طلا را که به هر کدامشان بخشیده بودم، همه را تا دینار آخر از دست دادهاند. من من آنها گفتم برادران من شش هزار سکه کرده ام که سه هزار سکه را سرمایه یک کار بازرگانی خودمان قرار می دهیم و سه هزار سکه یه دیگر را برای روز مبادا پسنداز می میکنیم. که اگر در این سفر تجارت ما با موفقیت رو برونه شد و بخت مانند گذشته با شماها یاری نکرد و به شهرمان مراجعت کردیم لاغل پول در باشد. که به زخم کارمان بزنیم و دستگیری پیش اشخاص دراز نکنیم و از این پول در راه صحیح و سوداوری استفاده کنیم و دوباره زندگی گذشته خود را دنبال کنیم به هر برادر یک هزار سکه دادم و خودم هم هزار سکه در اختیار گرفتم و سه هزار سکه دیگر را در محلی در خانه خود زیر خاک پنهان کردم مال تجارهای تجاره های مورد نظر من را خریداری کردیم و بعد از تحویل آنها به انبار کشتی خودمان هم سواری کشتی شدیم و به هنگامی که باد مساعد وزیدن گرفت کشتی سفر دریایی دراز خود را به سوی نقطه دوردستی آغاز کرد یک ماه تمام در کشتی بودیم و رنگ خشکی را ندیدیم فقط مرغان دریایی در فضای آسمان در پرواز بودند. سخن شهرساد که به اینجا رسید نب از گفتار فرو بست و گفت صبح نزدیک می شود و باید سخنم را به پایان آورم. در این هنگام دینارزاد گفت خواهر این قصه هیجانآور جذاب است و تصور می کنم که هر هرقدر جلوتر بروی حوادث این قصه شیرین تر می می‌شود. شهرزاد پاسخ داد همینطور است ما بقیه این داستان فوقولادی شیرین است به طوری که شنونده میخواهد تا انتهای قصه را بشنود اگر شهریار اجازه فرمایند آن را به پایان خواهم رسانید من میدانم که این داستان کنجکاوی شما را برخواهد انگیخت شهریار در این موقع جای بکاست و بدون آنکه سخنی بگوید مانند روز پیش نماز گذارد و بعد هم به بارگاه خود رفت تا رسیدگی امور روزانه بپردازد اما دستوری برای کشتن شاه ساد ساده نکرد وزیر اعظم هم خوشحال بود که دخترش تا این روز زنده مانده و از کشته شدن جان سالم به در برده است ب هفتم شب هفتم فرا رسید و دینارزاد از خواهر خود شهرزاد خواهش کرد تا سرگذشت دومین پیرمرد را تعریف کند. به شرط آنکه شهریار با این تقاضا موافقت فرماید در اینجا شهریار به سخن آمد و گفت حتما موافقت دارم من هم اشتیاق شنیدن بقیه این داستان شورانگیز را دارم شهرزاد رشتهٔ سخن را در دست گرفت و چنین گفت همانطور كه میدانید پیرمرد به اتفاق دو برادر خود بر کشتی سوار شد و مدت دو ماه تمام در دریا بودند و سفر بسیار راحت و بدون ای را به پایان رساندند. تا به بندری وارد شدند و کشتی لنگر انداخت و بازرگانان بارها و کالاهای خود را تحویل گرفتند پیرمت بازار فروش سودمندی برای کالاهای خود پیدا کرد و توانست اجناسی را که با خود آورده بود با ده برابر سود به فروش برساند و با پول آن کالاهای مناسب برای شهر خود خریداری کند و به اتفاق برادرانش به شهر خود بازگردد این اکس پیرمرد پیر را از زبان خود او در برابر جن و بازرگان بشنوید ما آماده بازگشت به شهر خود شدیم من که در بندر قصد داشتم سوار کشتی شوم و گردش میکردم خانوم زیبارو و تننازی را دیدم که لباسی معمولی پوشیده و در کرانه دریا مشغول قدم زدن است. بانوی زیبا تا چشمش به من افتاد به سوی من آمد و دست مرا در دست گرفت و بوسید و پس از مختصر گفت و شنودی که با من کرد به من پیشنهاد کرد که او را به عنوان همسری خود بپذیرم او با ناز و لطف خاصی با من حرف میزد و آنچنان رفتار او گیراب و دلپذیر همراه با متانت و مهبانی بود که نتوانستم پاسخ منفی به او بدهم گرسه در ابتدا از قبول پیشنهاد او تفره میرفتم. ولی او آنچنان از هر دری سخن میگفت که مرا شیفته و عاشق خود ساخت این بود که سرانجام در برابر او نتوانستم مقاومت کنم و تسلیم خواسته ای او شدم بعد از آن های زیبا برایش تهیه کردم و با هم عروسی کردیم و بعد از عروسی با هم سواری کشتی شدیم و ناخدای کشتی هم بادبانها را کشید و مسیر سفر را در پیش گرفت در طول مسافرت و مصاحبت با این خانم زیباروی متوجه شدم که این خانم دارای استفاده پسندیده و خوبی است و حق بیشتر او را می شناسم بر میزان عشق و علاقه نسبت به او افزوده می شود. دو برادر من که در نتیجه ندانم کاری و بیکفایتی این بار هم از تجارت خود سودی نورده بودند و آنچهرا هم که من به آنها بخشیده بودم از دست داده بودند از موفقیت من در کسب و کار و همچنین ازدواج با چنین همسر شایسته و زیبایی احساس حسادت می کردند و بر زندگی آسوده و خوب من رشک می بردند و از من میخواستند که از همسرم جدا شوم. و من حاضر نبودم که از همسر شایسته ام جدا شوم. ناراحتی آنها نسبت به من بیشتر و بیشتر شد تا آنکه هر دو ضد من با یک دیگر توانی کردند و قصد جانم را کردند. تا اینکه در یکی از شبها که من و همسرم خوابیده بودیم، هر دوی ما را به دریا انداختند. همسرم که بعدا معلوم شد از پریان بود، صدمهی ندید، زیرا همان‌گونی که اطلاع دارید، جن و پری در آب خفه نمی شوند و چون همسرم به من کمک نکرده بود، از بین میرفتم. اما همسرم قبل از آن که من در آب دریا غوطه شوم و تومه ماهی های بزرگ شوم، مرا به جزیره‌ای برد. روز بعد به من گفت: من با این عمل پاداش نیکی هایی را که به من کرده بودی به تو دادم. و در برابر آن همه نیکی سوی تو به خودم نمی توانستم جز خوبی پاسخ دیگری به تو دهم همسن مهربانم وقتی من تو را در کرانه دریا دیدم که قصد سوار شدن و کشتی را داری از تو بسیار خوشم آمد و خود را در برابر تو نمیان ساختم و خواستم تو را امتحان کنم یعنی خوبی و خوشتینتی تو را بیازمایم و برای آن که به منظور خودم برسم خودم را به صورتی که دیدی درآوردم. من خیلی خوشحالم که تو امتحان خوبی به من پس دادی و در مقابل وسوسه‌های های برادرانت ایستادگی کردی و علاقه واقعی را به من ثابت کردی اما من باید بدیها و حسادت دو برادرت را بدون مخافات نگذارم و میخواهم آنها را نابود کنم من به سخنان پریزاد گوش کردم و از محبت و خوبی او تشکر نمودم و گفتم ای بانوی من شما برخلاف آنها بزرگواری کن و رفتار بد آنها را نادیده بگیر و با وجودی که با من بسیار بدجختار کرده اند با این همه دلم راضی به مرگ آنها نمی شود وقتی من برای همسرم شهر دادم چه محبت ها و چه کمکهایی به این دو برادر کرده ام خشم او به منتحا درجه رسید و نفرت او نسبت برادرانم را چند برابر کرد و فریاد کشید در همین لحظه سراغ این خائنین نمک نشناس می روم و بدون کمترین معطلی انتقام خود را از آنان می گیرم. و کشتی آنها را در دریا غرق می کنم و هر چه را به قعر دریا می فرستم. من پاسخ دادم نه بانوی خوب من تو را به خدا این کار را نکن بگذار کمی آرامش پیدا کنی آن وقت تصمیم بگید اینها در هر حال برادران من هستند. از این گذشته در برابر بدی اشخاص باید نیکی کرد و الا چه فرق است بین من و برادرانم من کم کم با سخنان خود او را نرم کردم و قدری آرامش یافت و در یک به هم زدن از یک جزیره مرا به روی بام خانه ام که محل مسطح و همواری بود گذاشت و خودش از نظر ناپدید شد من از پشت بام به درون خانه رفتم و سه هزار سکه طلا را از محلی که آنها را پنهان کرده بودم بیرون آوردم بعد به محلی که دکان در آنجا بود رفتم و آن را گشودم بازرگانان و کسبه همسایه به من خوش آمد گفتند و از بازگشت من از سفر طولانی خوشحال شدند و تحصیل و تنجیدم کردند از دکیام که به خانه برگشتم دو سگ سیاه را دیدم که در حیات هستند و تا مرا دیدند به طرفم آمدند و دُم دادند و در عالم حیوانی خودشان قرنش کردند من که اصلا از موضوع سردر نمی دور دوچار حیرت شدم و با خود گفتم این سکها چگونه داخل این خانه شدند اما در همین لحظه پریزاد نمایان شد و گفت شوهرم تا چوب این دو سگ برادران تو هستند من که شنیدن این خبر ناراحت شده بودم گفتم چرا وی توانسته دو انسان را تبدیل به حیوان کند پریزا جواب داد من باعث این کار شدم به این ترتیب که به یکی از خواهرانم مأموریت دادم کشتی حامل برادرانت را در دریا غرق کنند اما آنها را نابود نسازد به شکل دو سگ مبدل سازد تا در حالت سگ بودند دست وفاداری بیاموزند گشت مال و تجاره تو هم با قرق شدن کشتی از میان رفت اما نگران نباش من زیان تو را از راه دیگری جبران خواهم کرد اما در مورد برادرانم من آنها را برای مدت پنج سال به این شیخ درآوردم اما آنها به قضیه ناپسند بوده که برای تنبیه و اصلاح آنها و اینکه از رفتار بعد خود احساس پشیمانی کنند چنین مخافاتی را ضروری دانستم پریزاد این سخنان را به من گفت و ناپدید شد اما قبل از غیب شدن به من خبر داد در کجا با او رو برو خواهم شد؟ اینک 5 ای سال از آن تاریخ میگذرد و در جستجوی پریزاد هستم تا اینکه گذرم به اینجا افتاده است و در اینجا این تاجر و این پیرمرد روشن زمیر و سگ مادر شد دی و در کنار آنها نشستم. این است سرگذشت من ای سلطان جنها آیا به نظر تو؟ سرگذشته من قصه شنیدنی و حیرت انگیزی نیست؟ جن در پاسخ پیرمرگ گفت راستی که قصهای بسیار حیرتآوری است به همین جهت من یک سرس از مجازات تاجر را تخفیف می‌دهم." پس از پایان داستان دومین پیرمرگ سومین نفر هم همان تقاضایی را که قبلا این دو پیرمرگ کرده بودند از جن کرد یعنی از او خواست در صورتی که سرگذشت او تر و حیرتانگیزتر از دو سرگذشت قبلی باشد آن وقت جرهمسلس باقیماندهٔ مجازات را در حق تاجر ببخشد و در نتیجه بازرگان به تمام معنی معاف از کیفر مرک شود. جن با تقاضای نفر سوم با همان ترتیب سابق موافقت کرد. اما چون صبح نزدیک می شود شهرساد گفت اینکه باید لب از سخن فرو بندم. دین که محفه شنیدن قصه شهرساد بود گفت که هایی تو به قطع شیرین و شگفت است که هرچه تو را تحصیم کنم کم کردم. شهرساد پاسخ داد من دسته های فراوان دیگری میدانم که به مراتب حیرت انگیزتر و شنیدنی تر از آن چرت که تاکنون گفتم. شهریار که با شوق و علاقه بسیار در انتظار شنیدن بقیه قصه های شهرزاد بود، کشتن او را تا روز بعد به تاخیر انداخت شب هشتم. شب هشتم فرا رسید و دینارزاد ماننده هر روز نزدیکی های صبح خواهر خود را صدا زد و گفت: خواهر من ساعت هاست که بیدار شده و با اشتیاق بسیار در انتظار شنیدن سرگذشت سومین پیرمرد هستم در این هنگام صدای این شهری گوش رسید که می گفتفت تصور نمی کنم این پیرمرد بتواند بهتر از سرگذشت دو پیرمرد قبلی باشد